هاهم قورباغه رو بخورید. یه ضرب المثل قدیمی میگه اگه اولین کاری که هر روز صبح میکنید این باشه که بیدار بشید و یک قورباغه زنده رو بخورید میتونید از دانستن این موضوع خوشحال باشید که این احتمالاً بدترین چیزیه که تا آخر روز به سرتون میاد. یه گفته دیگه هم هست که اگه باید یک قورباغه زنده رو بخوری فایده ای نداره که بشینی یک مدت طولانی نگاش کنی. گوربغه شما بزرگترین، زشتترین، سختترین و چالش برانگیزترین و در عین حال مهمترین کاریه که باید در اون موقع یا در اون روز انجام بدید. کارهایی که میتونند بزرگترین تغییر در حرفه و زندگیتون ایجاد کنه، بلا استثنا کارهای بزرگ و سختی هستند. اینا همون کارهایی هستند که بیشتر از همه احتمال داره در اونها تنبلی کنید. اینا کارهایی هستند که با اینکه میدونید انجامشون چقدر مهمه یا میتونه مهم باشه اونا رو مرتب عقب بیندازید. فرمول یک بار کاری اونها اینه. تمام کارهایی که باید در روز بعد انجام بدید رو شب قبل فهرست کنید. با استفاده از روش علف بپت فهرست رو بر اساس اولویت مرتب کنید. قبل از اینکه محل کارتون رو آخر روز ترک کنید تکلیف الف، یعنی مهمترین کاری که فردا باید انجام بدید رو بردارید و وسط میز یا محل کارتون بگذارید. بعد خودتون رو منذبت کنید که صبح قبل از اینکه تلفن بزنید یا روزنامه بخونید یا با همکارانتون صحبت کنید به عنوان اولین کار به سراغ انجام اون تکلیف برید و ولش نکنید تا تموم بشه. خودتون رو منضبط کنید که هر روز صبح گورباقتون رو بخورید تا براتون عادت بشه. به این ترتیب روزتون رو با ذوق و شوق شروع میکنید. از اون به بعد هم انرژی بیشتر و هم تمرکز بهتری دارید و با آهنگ سریعتری کار میکنید. همیشه وقتی که به عنوان اولین کار روز گورباقتون رو بخورید، طی روز کارهای خیلی بیشتری انجام میدید. حدود 5 سال پیش هدایت برنامه‌ریزی راهبردی یک شرکت میلیون دلاری را انجام میدادم. به اونها این داستان رو گفتم که به عنوان اولین کار در صبح غورباغتون رو بخورید. اونقدر از داستان خوششون اومد که کریسمس بعد به همه مدیران شرکت یک غورباغه فلزی داده شد که روی میزشون بگذارند تا اهمیت این اصر رو به یادشون بیارن فروش سالانه این شرکتیه 5 سال از سی میلیون دلار به بیشتر از 100 میلیون دلار ترقی کرد. در تمام شرکت هم مدیرانی که من به کار کردن با اونها ادامه دادم با افتخار قورباغه فلزی روی میزشون رو نشون میدن و به من میگن که چه تغییری در زندگیشون ایجاد کرده. شما هم امتحان کنید. قورباغه رو بخورید.